که هوایی نپخت یا به فراقی نسوخت آخر عمر از جهان چون برود خواب ملان بهشت اثر نازی صفاوی با صدای آنالی تاهریان تهیه کننده دامون آزری کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری انتشارات ققنوس فصل یکم از درمانگاه که بیرون آمدم با خود گفتم حالا که مادر نیست بهتر است به خانه امیر بروم از گرم و زفت داشت حالم به هم میخورد مثل آدم های از درون میلرزیدم دلم مالش میرفت و چشم هایم سیاهی اصلا فکر نمیکردم کردم مسمومیتی ساده آدم را اینطور از پادر بیاورد. چند بار پشت سر هم زنگ زدم. سورایا که در را باز کرد، کیفم را انداختم توی بغلش و با بی‌حوصلگی گفتم: در امارت رو هم اینقدر طول نمیدن تا باز کنن. واسه باز کردن در این آپارتمان فسخلی یه ساعت منو توی آفتاب نگه داشتی؟ سورایا که با تعجب و سر و نگاه میکرد گفت: این وقت روز اینجا چی کار میکنی؟ بود شب بیای، با دل خوری گفتم اون از درباز کردنت اینم از خوش آمد گفتنت از کنار سریا که هنوز جلوی در ایستاده بود به زحمت گذشتم داشتم از گرمو خفه می شدم. با یک دست موهایم را جمع کردم و با دست دیگر تقلیم می کردم دکمه های لباسم را باز کنم دست باچه مثل کسی که میخواهد جلوی دیگری را بگیرد عقب عقب راه میرفت رفت و با عجله می گفت ببین من از جون چند دقیقه صبر ولی دیگر دیر شده بود وارد حال شدم و مثل برخ گرفته ها یک دفعه زد فکر کردم اشتباه می کنم نمی توانستم باور کنم که درست می بینم. محمد روی مبل روپه روی برادرم امیر نشسته بود و روی مبل کناریش هم یک خانم. امیر با صدای بلند گفت سلام چه عجب از این طرفا؟ و با قدم بلند به سمت من آمد. انگار همه صداها و صورتها را جز صورت محمد از پشت مه قلیزی می‌دیدم. هر کاری می‌کردم نمی‌توانستم خودم را جمع و جور کنم. دهانم خشک شد. و چشمهایم بیان که بزنم خیره در چشمهای محمد که حالا سر پایست بود مانده بود. با فشار دست امیر به زور تکانی به خود دادم و در جواب سلام محمد با صدایی که بگوش خودم هم عجیب بود فقط گفتم. سلام. باورم نمیشد محمد بود. اینجا روبروی من با همون چهره مردانه و معصوم با همون چشمان مهربان و گیرا. چشمهایی که حالا قدر مهربانی و گیرایش را میدانستم و چهرهی که سالها آرزو داشتم تنها یک بار دیگر ببینمش. آرزویی که جز من و خدای من هیچکس از آن با خبر نبود. چنان احساس ضعف می کردم که با خود میگفتم آخرین لحظه های عمرم است. لابلای حرفهای امیر که از من میخواست روی مبل بنشینم صدای محمد را شنیدم. فرزانه جان بهتره دیگه زحمت را کم کنیم. انگار صاعقه بر سرم فرود آمد. پس ازدواج کرده و این زنش است که فرزانه جان سویش میکند. همونطور که روزی مرا صدا میزد. همونطور که مدتها بود زر زر جانم با یاد آوریش درد میکشید. از احساس ضعف حسادت، رنج، پشیمانی، خجالت و چشمانم سیاهی رفت فقط دستم را به طرف امیر دراز کردم و دیگر چیزی نفهمیدم وقتی چشمهایم را باز کردم سریا را دیدم که با مهربانی و مالای مد صدایم میزد با تمام قدرتم میکشیدم خودم را جمع جور کنم که دوباره با صدای فرزانه که میگفت مهناس خانم حالتون بهتره احساس تلخو کشندگی حسادت به دلم چنگ زد. من حق نداشتم حسادت کنم. اصلا هیچ حقی نسبت به محمد نداشتم. ولی چرا این دل لعنتی اینجور می کرد؟ انگار تازه بعد از سالها پردههایی از روی چهره واقعیم کنار میرفت و خودم رو بهتر میشناختم. این من بودم که اینطور از حس وجود رقیب هم شکسته بودم؟ نه، نه. هنوز هم احمقم. چرا رقیب؟ من دیگر چه حقی نسبت به محمد دارم؟ چه نسبتی با او دارم که این زن رقیب من باشه؟ ای خدا من ناسه باسی کرد و باه موقع زندگیم را تباه کرده بودم. ولی به جبرانش هشت سال سوخته بودم. دیگر کافی است. خدایا مرا ببخش. عشق نخواسته توی چشمهایم حلقه زد سریا با مهربانی گفت مهناز جان گوش کن اگه این شربت رو بخوری و یه کمی استراحت کنی بهتر میشی عرق نه بعد با محبتی خواهرانه برای نشستن کمکم کرد دستم را دراز کردم که دست مالکا غزی را از سریا که بالا سرم ایستاده بود بگیرم که باز چشمانم به چشمان محمد افتاد ای خدا چرنجی از نگاه این چشمها به جانم میریخت. این بار محمد پشت پرده اشک گم شد و فقط صدایش را شنیدم. صدایی که نفهمیدم خشمگین بود یا قصدار. گفت امیر من رفتم دنبال مرتزا. شربت را خوردم و به توصیه یه که میگفت اگر یک ساعت بخوابی حالت خوب خوب میشه چشمانم را بستم. و با بسته شدن در اتاق در تنهایی سکوت ماندم. چشمهایم میسوخت و عشق بی اختیار برگونه جاری بود. بعد از سال میدیدم اشک نه عشق قطره که سیلوار صورتم را خیز می کند. قلت زدم و سرم را توی بالش فرو کردم تا صدای ترکیدن بغزی که داشت خفهام میکرد صدای حق حق درماندگی بیرون نرفت. مدام این فکر مثل ماری که قلبم را نیش بزند توی مغزم دوران میکرد. کرد. محمد زن گرفته. محمد استفاج کرد. قلبم می سوخت و آتش می گرفت. و سیل عشقای بی اختیارم حتی زره ای از تلخی این آتش نمی گاست. از فشار ناخونهایم. به کف دستهایم که برای خفه کردن صدایم مشتشان کرده بودم، اسم کردم دست‌هایم آتش گرفته و می‌سوزد. شرغی از فشار دردی که مثل پتک به سرم کوبیده می‌شد، داشت منفجر می‌شد. توی تاریکی اتاق، و لابلای گریه بی‌امانم، کار ناگهان زمان و عقب برگشت. و من مثل کسی که نامی عملش را جلویش گرفته باشند به گذشته پرتاب شدم به ده سال پیش به زمانی که شانزده ساله بودم چقدر خوشبخت بودم و درست به اندازه خوشبختیم یا شاید به علت خوشبختی احمق بودم